بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداونده به مهربان نهایت باره قسم به شب چون همه چیز را می پوشاند و به روز چون متجلی می شود و به آنچه از نر و ماده آفریده است بیگمان کوشش های شما گناگون است پس کسی که در همه وجوه خیر به داد و دهش پرداخت و پرهیز پیشه کرد و سخن نیکو را تصدیق کرد پس راه او را به سرای آسایش یعنی بهشت هموار می سازیم اما کسی که باخل کرد و خود را بینیاز پنداشت و سخن نیکو را تکذیب کرد پس راه او را به سرای دشواری یعنی دوزخ هموار می سازید. و چون به گور انداخته شود مالش او را از عذاب خداوند بینیاز ساختن نمی تواند. بیگمان راهنمودن او بر ماست و بیگمان آخرت و دنیا از آن ماست پس شما را از آتش شغل ترسانی ترسانیدیم کسی به آن جز بدبختترین مردم نمی سوزد آنکه آیات الهی را تکذیب کرد و روگردانید و با زودی پرهیزگارترین مردم از آن باز داشته می شود آنکه مالش را در راه حق می دهد تا پاکیزه شود و هیچ کس بر او حق نعمتی ندارد تا جزای آن داده شود، جز جستن خوشنودی پروردگاری والا علا مرتبه شاه و بزودی خوشنودی شود،